داستان هفت برادر در روزگار قدیم نشابور شهری بود بزرگ آباد. در گوشه میدان سرایی بود که اتاقها و خوابگاههایی داشت بسیار قشنگ و مرتب هر کاروانی که از شرق به غرب میرفت یا از قرب برمیگشت چند شبی رو سر راه خودش در نشابور بار میداخت و کاروانیان هم استراحت می‌کردند و هم چیزهایی می‌خریدن و میفروختند. نظم و ترتیب و امنیت این شهر در همه جا مثال زدنی بود دور تا دور این شهر پرثروت و نعمت دیوار بلندی ساخته بودند و در پشت اون گودالهای عمیقی کنده بودند و های شهر رو هنگام غروب آفتاب میبستند. و دروازه بانان به هر قریبه که شک میکردن اجازه ورود نمیدادند و داروغ و نگهبان از صبح تا شب در شهر می و مراقب بودن و با این حساب هیچ دوز و راهزنی نمیتونست ادعا کنه که یک دینار از اموال مردم رو دزدیده یا به قارت برده و اما بشنوید ماجرای عجیب هفت برادر رو که دوست و راهزن بودند و در عین حال با انصاف و خوشقلب که سالهای سال بود انبال ثروتمندار رو به قارت می و بین مردم فقیر قسمت می کردن. و این هفت برادر مدتها بود که عهد کرده بودند به هر قیمتی تلسم رو بشکنن و به نشابور دست برد بزنن و برای این منظور چندین ماه در اطراف دیوارهای شهر کمین کرده بودند، بلکه روزنه پیدا بشه و شبانه وارد نشابور بشن از طرف دیگه دروازه های شهر رو که بر سر دیوارها پاس می و نگهبانی می و همه غذایا رو می و سبک سنگی می عاقبت متوجه شدند که از این راه ها به جای نمیرسند و اگه بیگودار به آب بزنن به چنگ ماموران داروغه اسیر میشن. اما هفت برادر ناامید نشدن و هر شب در گوشه ای دور هم جمع می شدن و نقشه ای می میکشیدن و طرح تازه میریختند که همه بینتیجه بود. تا اینکه یک شب برادر سوم در بین جمع به زبون اومد و گفت، برادران من راه ورود به نیشابو رو تقریبا پیدا کردم برادران اصلاح داشتند که هرچه زودتر طرح و نقشش رو بشنوند و اون هم توضیح داد که از چندین نفر از راهزنان حرفه و سال دیده شنیده که فقط یک نفر راه پنهانی ورود به نیشابو رو میدونه و افسوس که حاضر نیست این راز رو به کسی بگه این شخص درویشیه که در یک کلبه در دامنی کوی نزدیک نشابور تنها زندگی میکنه. اینطور که میگن این مرد به نام درویش مهربان معروفه. در جوانی دوست و راهزن بوده و در این کار بالاده است و هیچکس حریفش نمیشده. درویش مهربان وقتی به سن 40 سالگی میرسه از کارش پشیمون میشه و توبه میکنه و حالا در حدود سی چهل سالی که گوشگی شده اما در کلبش به روی همه بازه و هرکس کس گرفتاری و مشکلی داره نزدش میره درویش مهربان اگه بتونه گره از کار کسی باز کنه این کار رو انجام میده برادران وقتی این داستان رو شنیدن به فکر رفتن برادر چارم گفت در فرض که درویش مهربان راه پنهانی ورود به نشابو رو بدونه چه فایده ای داره؟ او که رازش رو فاش نمیکنه با زور و ضربم که نمیشه زبونش رو باز کرد. برادر اول که نقش کش و مغز متفکر این گروه بود گفت این کارو بذار به عهده من راهش رو خوب بلدم. قبلا چند بار نام درویش مهربان رو شنیده بودم میدونم که کلبش در دامنه کدام کوهه میگن حتی وقتی اون راهزن مشهوری بوده هیچ کس رو عذیت نمیکرد و هر وقت که با دار و دستش راه کاروانی رو میبستن و انبالشون رو میگرفتن هر کسی که ناتوان بوده و التماس میکرده انبالشون رو پس میداده و از بقیه انبال فقط قسمتی رو برمی داشت و می گفت این رو برای رفقام و یه عده افراد محتاج برمی برادرها من میدونم که چطور باید زبونش رو باز کنم صبح روز بعد برادر اول به اتفاق برادر دوم و سوم با اسب به طرف کوی رفتند که کلبه دردیش مهربان در دامنه اون بود ساعتی بعد از ظهر بود که به کلبه دردیش رسیدند. وارد کلبه شدن و در گوشهی نشستن. در ویش مهربان که چشمهاش رو بسته بود و در آنم خودش فرو رفته بود وقتی چشمهاش رو باز کرد به سه برادر خوش آمد گفت و از جاش بلند شد و تا غذایی براشون بیاره. برادر اول دستش رو بوسید و گفت ما در راه نان و پنیر خوردیم گرسته نیستیم برای حاجتی نزد شما آمدیم. در ویش مهربان گفت هرچه در دل شما سه نفر هست، بگید. در اینجا هیچ آداب و تشریفات نیست. خانه درویش مهربان است و هر کس به هر زبانی که دلخواه او هست، حرفش رو بگه اگه کاری از دستم بر بیاد، بدون منت انجام میدم و اگه نتونم، سادو راحت میگم که از من درویش این کار بر نمیاد. برادر اول که زبان چرب و نرمی داشت گفت جناب درویش ما هفت برادریم که در غم و شادی در کنار همدیگه هستیم و پشت و پناه و یار و یاور همدیگه ایم چند هفته که برای برادر کوچکتر ما گرفتاری بزرگی پیش اومده بیگناه در زندان نیشابور افتاده و قاضی شهر همین دیروز حکم اعدامش رو صادر کرده و قراره پس بر دو صبح برادر کوچیک و محصوم ما رو دار بزنن و بعد از مرگ اون ما شش نفر تا زنده ایم آدار میشیم و جمع ما داخدار میشه و دست و دل ما دنبال هیچ کاری نمیده درویش مهربان تو تنها فریادرس ما هستی ما اومدیم تا از تو کمک بگیریم سه برادر دیگه ما در چند فرسنگی اینجا منتظرن که ما خبر خوبی برای اونها ببریم درویش مهربان سرش رو بلند کرد و در چشمهای برادر اول خیره شد و پرسید جان من نمیگم که ناروا میگی اما میخوام بدونم چرا قاضی شهر حکم به ایدامش داده مگه نمیگی بیگناهه کار بدی نکرده برادر اول سرش رو زیر انداخت و با صدای قمالود و لرزان گفت درویش مهربان برادر کوچکتر ما آدم بی نهایت دلسوز و دلرحمیه هر وقت چشش به آدم فقیر و بدبختی میفته بی اختیار عشقش جاری میشه و هر چیزی که داره میبخشه در یک شب سرد زمستونی در تاریکی یه نفر رو میبینه که در گوشه کوچه نیم به افتاده دلش به رحم میاد و بالاپوش خودش رو لباس خودش رو در میاره و به اون میپوشونه در همین موقع نگهبانا میرسن و اون رو میگیرن و در روشنایی فانوس معلوم میشه که اون شخص نیم نیمبرهنه با خنجر زهرالود کشتن و هرچه بعدن تحقیق میکنن قضیه آشکار نمیشه بدبختانه برادر کوچک ما هرچه میگه و قصن میخوره که رهگذری بوده و از قضا اتفاقها خبر نداشته و قصدش کمک به اون شخص بوده کسی باور نمیکنه و قاضی بعد از چند هفته تحقیق چون گناهکار واقعی رو پیدا نمیکنه حکم میکنه که برادر کوچک ما رو دار بزنن برادر اول دیگه نتونست حرفی بزنه و حق حق به گریه افتاد و به اشاره اون دو برادر دیگه هم حق حق به گریه افتادند درویش مهربان دلش برای اونا سوخت و گفت عزیزانم گریه نکنید بگید که چه کاری از من برمیاد بر فرض که برم به قاضی بگم که برادر کوچک شما بی‌گناهه کسی به حرف من درویش یلاقبا گوش نمیده که برادر بزرگتر گفت ما هم از شما توقع این کارو نداریم ولی اگه به ما راهی نشون بدید که پنهانی و شبانه وارد نشابور بشیم ما شیشتا برادر خودمون رو به آب و آتیش میزنیم و برادر کوچیکمون رو به هر قیمتی که شده از زندان بیرون میاریم دردش مهربان چند دقیقه در فکر رفت و نگاهی به اون ستا برادر انداخت و گفت من اطراف نیشابور رو مثل کف دستم میشناسم در روزگاران جوانیم که راهزن بودم یک ساعت قرار و آروم نداشتم مثل برقباد از این گردنه به اون گردنه میرفتم و جای نبود که ندید و نشناخته باشم اما بیاین بر سر گرفتاری شما برادرا که نمیدونم که هستید چه هستید اینطور که میگید میخواین وارد نیشابور بشید و برادر کوچیکتون رو از مرگ نجات بدید من راه مخفی ورود به شهر رو به شما نشون میدم به شرط اینکه قول بدید جوان مرد باشید و تا زنده هستید دست افتادگان رو بگیرید و اگه به جاه و جلال و مال و ثروتی رسیدید به فکر بیچارگان و مسلومان باشید سه برادر قول دادن که در راه خطا قدمی بر ندارند اون وقت دردیش مهربان بهشون گفت در ده فرسنگی جنوب نشابور ویرانه ایه. که در قدیم در اونجا بود و کار میکرده و حالا خرابه های اون آسیاب باقی مونده و در گوشه از این ویرانه نیزاری میبینیم و در وسط اون نیزار چاهیه که در نظر اول کسی متوجه اون نمیشه اما با کمی دقت چاه رو پیدا کنید این چاه بسیار عمیق و ته اون به یک راهروی طولانی راه داره و در این راهروی طولانی که معلوم نیست در چه زمانی درست شده باید پیش برید و تا برسید به انتهای اون که میرسه به ته چاه دیگه‌ای که اگه از اون بالا برید درست در وسط یکی از انبارهای متروکه کاروانسرای معروف نیشابور سر در میارید و از اونجا دیگه راه بازه و میتونید برید و برادرتون رو نجات بدید و از همون راه بیاید و تا برسید به آن ویرانه دردیش مهربان دیگه چیزی نگفت و اون سه برادر هرچه پرسیدند جوابی نداد اما سه برادر که به مقصود رسیده بودن از جا بلند شدن و دست درویش مهربان رو بوسیدن و از کلبه اون بیرون اومدن. تا در تاریکی شب رسیدن به جایی که چهار برادر دیگه در انتظارشون بودند و صبح روز بعد هفت برادر سباه شدن بر هفت از و رفتن و رفتن تا رسیدن به ویرانی که درویش مهربان نشان داده بود. و در گوشه آن دیرانه نیزار کوچکی رو دیدن و بعد از مدتی کند و دهانه چاه رو که در زیر سنگ بزرگی مخفی شده بود پیدا کردند سنگ رو از دهانه چاه برداشتن و اون وقت به اشاره برادر بزرگتر که سر کرده و نخشکش اون دسته هفت نفری بود که برادر چهارم و برادر پنجم تنابی به کمرشون بستند و به تی چاه رفتن و از اونجا وارد راهرو شدند مشعلی رو که با خودشون برده بودن روشن کردند و در آن راه طولانی رفتن و رفتن تا در انتهای اون به چاه رسیدن و برادر چهارم در همونجا موند و برادر پنجم به کمک وسایلی که با خودش آورده بود بالا رفت و رسید به انبار متروکه و از اونجا وارد کاروانسرا و میدان بزرگ شد و در شهر گشتی زد و دوباره به انبار متروکه برگشت و به ته چاه رفت و با برادر چهارم از راهروی طولانی گذشتند و از ته چاه بالا رفتن و غذایا رو برای برادر خودشون توضیح دادند و همه خورم و خوشحال منتظر موندن که برادر بزرگتر تصمیم بگیره برادر بزرگتر گفت ما راه مخفی ورود به نیشابور رو پیدا کردیم اما بی احتیاطی نباید بکنیم اینطور که میگن شبها چند سگ درنده رو در شهر رها میکنند و این سگها به محض اینکه غریبه ای رو ببینن چنان سر و را راه که نگهبانا خبردار میشن پس باید اول فکر برای این کار بکنیم برادر بزرگتر دو برادر ششم و هفتم رو راهنمایی کرد که به شهر برن و در دکانهای قصابی اطراف میدون بزرگ به کاری مشغول بشن و کم کم با سگ کنار بیان و همان روز اون دو تا برادر به شهر رفتن و به قصاب های میدون گفتند که حاضرن بی و حقوق چند هفته در دکان و مغازه اونا شاگردی کنن و هر کدوم در مغازه مشغول به کار شدن و اون دو برادر روزها در مغازه قصابی به هر کاری تن میدادند و شاگردی و پادویی می و در زمد کار استخوانها و گوشت ریزها رو در گوشه‌ای روی هم می ریختن و چون گفته بودند که جایی ندارن و شبها در مغازه می‌خوابیدن وقتی هوا تاریک می‌شد از مغازه بیرون می‌اومدند و همه استخوانها و گوشتا رو جلوی سگها می‌ریختن چند شبی نگذشته بود که سگها به محض رها شدن سراغ اونها می اومدن و دم تکون میدادند و سهم خودشونو می گرفتن و میرفتند. دو هفته بعد این دو برادر به بقیه برادرا خبر دادند که سگ ها رام شده و برادر بزرگتر یک شب همه برادرا رو بر سر چاهی که در وسط نیزار بود جمع کرد و گفت امشب باید کار همون بشه و وظیفه هر کدوم رو توضیح می ده. ساعتی بعد همه از راه مخفی با وسایل و لوازم کافی به انبار متروکه رسیدند و از اونجا به کاروان میدان بزرگ رفتند سکهای درنده دویدن که ببینند در سیاهی شب چه کسایی آرامش شهر رو به هم زدن اما دو برادر ششم و هفتم چند پاره استخوان و چند تکه بزرگ گوشت به اونا دادند و سکها بی سر و صدا به خوردن گوشت و استخون مشغول بودند و هفت برادر با دست کلیدهای مخصوصی که داشتند چند مغازه زرگری و عتیق فروشی رو باز کردند و هرچه چه دستشون اومد در کیسه‌هاشون ریختند و همراهی خودشون آوردند بعد از اون به کاروان سران رفتن و در انبار بزرگ کالا های قیمتی رو باز کردند و هرچه چه سبک وزن و سنگین قیمت بود و انتخاب کردند و در کیسه هاشون ریختند نزدیک سهر با کیسه های پر از چای که در وسط انبار متروکه بود پایین رفتند اما دو برادر ششم و هفتم در نیشابور موندند و به مقاضه قصابی برگشتن تا کسی به اونها شک نکنه و در جریان قضایه هم باشن و ببینن که نگهبان ها داروغه ها چه کار میخوان کنن و چه کسانی رو به اتهام دزدی نزد قاضی میبرن و اما وقتی هوا روشن شد و کم کم اددهی به بازار اومدن ناگهان از هر طرف سر و صدا بلند شد و صدای آی دوست آی دوست در فضا پیچید و نگهبانا دوان دوان اومدن و قاضی و حاکم شهرم خبر کردن و هر کسی چیزی میگفت و به طرف میدفید و تا ساعتی همه گیج و حیران بودند در نشابور چنین چیزی سابقه نداشته و همه معتقد بودند که خطرناکترین دزدان جرأت ورود به این شهر رو ندارند ولی حالا به چشم خودشون میدیدند که یه عده وارد شهر شدن و در مغازه رو باز کردن و یا شکستن و اشیاء قیمتی زیادی رو از مغازه ها و انبار بزرگ به قارت بردن هیچ کس نمیدونست چه کسایی و از کدوم سوراخ به شهر آمده بودن داروغه از تمام دروازبان ها در میدان بزرگ شهر بازجویی کرد. همه میگفتند که دیشب حتی یک بار هم دروازه های شهر باز نشده و از غروب آفتاب تا دم های صبح حتی یک نفر غریبه یا آشنا وارد شهر نشدن داروغه عقیده داشت که شاگردان دکانهایی که اشای قیمتی میفروشان دست به دست هم دادند و به این دوسیه بزرگ دست دادن دلیلش هم این بود که سگهای درنده اصلا پارس نکردن پس معلوم میشه که دوستها غریبه نبودن و سگها با اونها آشنا بودند حاکم و قاضی با نظر اونها موافق بودند داروغه چند نفر از نگهبانان رو فرستاد تا شانتو از پادوها شاگردها رو بیاره و نگهبانا هم رفتن، حفش نفر رو که به اونها مشکوک شده بودن و آوردن و قاضی از اونها پرسیدش و اونها قسم خوردن که رویشون از جایی خبر نداره قاضی خانه نشد و دستور داد اونها رو به چند ستون که در اطراف میدان بزرگ بود ببندن و شلاق بزنن عده زیادی در میدان بزرگ جمع شده بودند همه ثروتمندان و افراد سرشناس شهر در اطراف حاکم و قاضی و داروغه حلقه زده بودن و اموال دزدی شده رو از اونا میخواستن قاضی برای رضایت خاطر اونا دستور داد که متهمان رو بیشتر شلاق بزنن و یکی دو نفر از پادوها که ضعیفتر بودن زیر شلاق از توش رفتن یکی از اون دو برادر گفت من دیگه نمیتونم این وز رو ببینم میترسن چند تا از این افراد بیگنا زیر شلاق جان خودشون رو از دست بدن برادر دیگه یعنی برادر کوچیک‌تر گفت باید کاری کرد اما نباید به ما سوء زن پیدا کنند. برادر ششم گفت ما به درویش مهربان قول دادیم که جوانمرد باشیم و دست افتادگان رو بگیریم من کاری می‌کنم که دست از اون بیچاره‌ها بردارم و به مام هم گمان بد نداشته باشن برادر کوچکتر چیزی نگفت و برادر ششم از میان جمع راهش رو باز کرد و خودش رو به حاکم و قاضی و داروغه رسون و گفت این بیچاره ها رو شلاق نزنید هیچ کدوم دوز نیستن من میدونم که دوزت ها از کجا آمدن و اموال دوزی رو در کجا مخفی کردن قاضی اشاره کرد که دست از شلاق زدن اون بی بردارن و از اون جوان که مدعی بود دوستها رو میشناسه پرسید از کجا به این راست پی بردی؟ بردر شهشون گفت دیشب در دکان قصابی خوابیده بودم سر و شنیدم و بیرون اومدم یه عده رو دیدم که مغازه ها رو داشتن باز می و هر چیزی رو که به دستشون میرسید. در کیسه می و می بردن. سایه به سایه اونها رفتم و از دور دیدم که انبال دوزی رو کجا پنهان کردند. حاکم و قاضی و داروغه و یه عده از کسایی که دور اونها حلقه زده بودن دنبال بردر ششم را افتادن و از اونجا به کاروان سرا رفتن. بردر ششم اونها رو به انبار متروکه برد و چاه عمیق رو در گوشه انبار نشون داد و گفت دوست‌ها با اموال دزدی وارد این چاه شدن و پایین رفتن. من یقین دارم که این چاه به یک جای وصل میشه. و دوستها هنوز فرصت نکردند اموالشون رو به جای دوری برده باشند. احتمال داره که در ابتدای راه اون‌ها هایی که جمع کرده بودند و روی هم انباشته کرده باشند تا در فرصت مناسب همه را از اینجا ببرند قاضی و صاحبان اموال به برادر ششم گفتند که اگه به ته چاه برن و اموال دوزی رو کشف کنن هرچه بخواد بهش میدن و او هم قبول کرد و یا و به کمرش بست و وارد چاه شد و پایین رفت چاه انقدر عمیق بود که ته اون دیده نمیشد. وقتی پای برادر ششم به آب رسید با چابوکی و زبردستی وارد راهروی زیرزمینی شد و از اونجا به طرف چای خروجی حرکت کرد و اونها که در بالای چاه در انبار متروک استاده بودند، هرچه منتظر موندن ازش اثری ندیدند. و هرچه سرش رو توی چاه برد و فریاد کشید کسی به اون جواب نداد یه نفر میگفت که احتمال داره در ته چاه از سوش باشه دیگری میگفتش که حتما رفقاش در اون راهروی زیرزمینی که حرفش میزنه منتظرش بودن و با هم فرار کردند و دیگران دیگه دیگای میزدند و ناچار دنبال یک نفر دیگه بودن که بیان و داوطلبانه ته چاه بره چاه انقدر عمیق بود که هیچ کس داوطلب شد تا اینکه برادر کوچکتر پیش اومد و قبول کرد که تی چاه بره و به اونها خبر بده که در اونجا چه اتفاقی افتاده. صاحبان انبال بهش قول دادن که اگه موفق بشه یک قسمت از اموال پیدا شده رو بهش میدن و تناب رو به کمرش بست و برادر کوچکترم تای چاه رفت و این بار هم صاحبان اموال و حاکم و قاضی و داروغه هرچقدر انتظار کشیدن خبری نشد همه گیج و حیرون مونده مودن نمیدونستن که چه خبره و چرا هرکس کس ته اون چاه میره ناپدید میشه و خبری ازش نیست و بعد از ناپدید شدن اون دو نفر دیگه هیچکس کس جرعت نمی کرد ته چاه بره و خبری بیاره چون تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودند که هر کس تای این چاه بره زنده بیرون نمیاد. و از طرف دیگه هر چه در شهر جستجو کردن از انبال دوزی اثری به دست نمیاد. با این وصف صاحبان اموال مبلغ جایزه رو بالا بردن و دو جوان ورزیده و چالاک تنابه خودشون بستن و تی چاه رفتن و در اونجا راه ورودی به راه زیرزمینی را رو پیدا کردند و رفتن و رفتن تا ببینن به کجا میرسند و اونها که بالای چایستاده بودند به این گمان که اون دو نفر هم در تای چا جان خودشون رو از دست دادن از انبار متروک بیرون رفتن اما نزدیک غروب آفتاب اون دو جوان از دروازه جنوبی شهر وارد نشابو شدند. و داستان رو حکایت کردند که چطور به چای رسیدن و از چاه بالا رفتن و از ویرانی در محل آسیاب سرشون رو بیرون بردن و به این ترتیب حاکم و قاضی و داروغه و صاحبان انبال فهمیدن که جستجو جو بیفاید است و دزدان از این راه آمدن و همه چیز رو غارت کردن و بردن. و بشنوید از هفت برادر که بعد از اون که دو برادر ششم و هفتم به اونها ملحق شدند با کیسه های پر از اشیای قیمتی و طلا و جواهر حرکت کردند و اسب تاختند و در تاریکی شب به پناهگاه خود در یک کوهستان دورافتاده رسیدند و یک هفته از پناهگاه خودشون بیرون نیآمدند و در روز هفتم برادر بزرگتر که سرکرده و مغز متفکر گروه بود گفت برادرها ما تلسم رو شکستیم و ثابت کردیم که حتی در نیشابور هم با اون همه چیزهایی که داشت نفوذ پیدا کردیم اما حالا که هفت روز از اون شب عجیب میگذره حس میکنم که خوشحال و راضی نیستیم مثل اینکه یه جای کار ما عیب داره. برادر دوم گفت: من در این چند روز با همه برادرها حرف زدم. همشون میگن که ما درویش مهربان رو فریب دادیم و این موجود عزیز و دوست داشتنی رو گمراه کردیم. همه میگن که ما به اون قول دادیم که وقتی به اموال و ثروتی رسیدیم، افتادگان رو فراموش نکنیم. برادر بزرگتر گفت حق با شماست. من هم در فکر درویش مهربان هستم. باید کیسه های پر از اموال دوزی رو برداریم و نزد درویش مهربان بریم و همه چیز رو بهش بگیم. هرچه اون بگه قبول میکنیم. برادرها رضایت دادن و همه با هم حرکت کردند. و اون روز نزدیک قروب به کلبه درویش مهربان رسیدن در کلبه باز بود و درویش در گوشه نشسته بود و در دنیای افکار و تخیلات خودش فرو رفته بود برادران روبروی اون نشستن و برادر بزرگتر داستان رو از اول تا آخر حکایت کرد درویش مهربان سری تکان داد و گفت دوستان زودتر از این منتظر شما بودم. روزی که سه نفر از شما نزد من اومد و اون دروخ ها رو به من گفت میدونستم که حقیقت نمیگه و حد زدم که شما باید اون هفت برادر راهزن باشید که داستانهایی درباره شما از زبان کسانی که گهگاهی به اینجا میان شنیده بودم. به من گفته بودند که شما در عین راهزنی به رحم و مروت مشهورید. با این وصف راه مخفی ورود به نیشابور رو به شما گفتم تا آزمایشی کرده باشم. چند روز پیش یه نفر به اینجا اومد و داستان دوستی عجیب رو در نیشابور برام تعریف کرد و من در این چند روزه در انتظار شما بودم. برادر بزرگتر گفت به هر حال ما رو ببخش که به شما دروغ گفتیم حالا همه اموال دوزی رو آوردین تا تکلیفش رو معلوم کنیم این رو هم بگم که دو نفر از برادران من قبل از اینکه اون شب چند هفته در نشابور در های قصابی شاگردی کنن اونها میگن که در نشابور ثروت و نعمت زیادیه اما آدمهای بیچاره و فقیر تعدادشون خیلی زیاده و ثروتمندان اونجا رحم و مراوت سرشون نمیشه انبارهاشون پر از گندمه ادی زیادی در اونجا شب و روزه میخوابند برادر بزرگتر دیگه چیزی نگفت درویش مهربان گفت دوستان شما هرچی از اون انبال احتیاج دارید یا در نظر دارید به افراد محتاج بدید و بقیه رو نزد من بذارید یه نفر رو میفرستم که صاحبان امبال رو به اینجا بیارن و از اونها قول میگیرم که سهم مستمندان شهر رو بدن و هرچه موند به انبارها برگرده. هفت برادر دیگه چیزی نگفتن و سوار بر هفت اسب شدن و تاخت کردن و نزدیک صبح، به پناهگاهشون رسیدن و در اون موقع که هوا کم کم روشن می شد خسته بودن اما احساس می که دلشون روشنه و روحشون آرام از داستان هفت برادر به این نتیجه میرسم که خدمت شما با یک بیت از شعر حضرت سعدی شیرازی عنوان میکنم ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس و نیاید هیچ کار سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگر ها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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانهای داستان صوتی